هم میلیستن یه سرستن، یه وجهب، یه وجهب، کن کاملا شفاف بوده، زیر شدره که اونایی که، زیره شدره یعنی مثل عقیق تار اونایی که روشن بوده کاملا شفاف بوده، نه ی لب که اینکه، مثلا، نارسون رو اینجه که زان عقیقی، میدید که حرکبه دید از عقیق گلافت می‌فهمه که عقیق چی یعنی و باز با می‌دونه که لل یعنیش اون قصه او ببخش تو قصه‌تون می‌گه چون قصه‌تون قصیده‌ی مادر می‌رابه کرد می‌که وقت می‌خوند تو خون رو و شراب برست شد چند از اون سر چون عقیق دماغی چند از اون لل چون نگینه و درشان یعنی اون بالاش هیچ دورت نداره پاهیم‌ترش یک کمی عنوزون زرات برید به هاره باعث ده بنابرای و اون خیلی طول میکشده تا صاف بشه در این چند می کده تو پیرو می کده مثل من دست دهند و باید می که و زودتر تو سافش در میورده این از یه قسمتی عظمه ای عقید بود راهشون لعلا دریا یعنی شراب کاملا ساف سافش سر بود خود خاجه بگه ساف سر خم من مدا من ایش خوش از دو به باشدون که صاحب این سرفان دوره درگیان با خوب. لب و دمدانس را حبور نمج هست بر جان و سینه های کبار. در چنین موسمی عجب باشد که به بندن میکده به شتاب در میکانه بسته اند و دگر یا مفت هل افقا مفتقه هل افقا مفتقه هل مفت همیشه مرادا یا حرف می‌داس می‌کنیم منادا اگر که اضافه شده باشه به چیز دیگه مثل اینجا منصوبه مفت حل عبا ولی یا مفت مفت مفت مقالی باشه, باشه یا مفت هو ولی اگر اضافه شده شده به کلمه‌گه یا مفت حل عبا یعنی باز کن یا مفت حل عبا که باز کنیم دیگه. کن حافظا غم که شاهد بخ آقه بد، برکشب به چکر نقا و بهمونه بخون آقا سفن اینجا چیز من نسته من هست صبح دولت میدمد که جام همچن آفدار صبح دولت میدمد که جام همچن آفدار فرصتیم کجا؟ خورشید این کجا باشد، به جا تانمی تشکیش و ساغی یار و مطرد نقطه گو موسم عیش از به جور ساغر و عهد شباب از فیل تفریح تف و زیور حسن و ترم خوش بود ترکیب زرین جام زرین جام, جام یا لعل مزاق با... لعل مزاق خوش بود ترکیب زرین جام با لن. لعل مزاق با لعل مزاق تراب جام زرین از خیال لطف من مشاطی چلالات تعالی تو مشاطی چلالات مشاطی در زمین برگ گل خوش می‌کند پنهان گلاب اینجا توجه فرمایید حالا بعدن ندارم خیلی متأسفم این شعر خیلی خیلی نازک خیلی ظریفه تو دونه ای کردیم باید اگر نه اصلا معنی از خیال خیال لطفه می یعنی می رو میونه خیالش نیکرده شما از خیال لطفه طبیعت آدم مشتاقه چالاک طب در زمیر برگ گل خشت می‌کند تنها گلاب یعنی لطف نید خیالش مثل گلاب است که طبیعت را آدم احساس میکنه که این در برگ گل بکنه خیلی چیزه ذریعی، شهر ذریعی شاهدون نطرت به دست افشان و مستان پارکو قمزه‌ی ساگیز چشمه مستخاب. مه من پرستون ماست خوب. با شدن ما مشتری یه بیلیز از این جنگن مستعمره کناریزه لی، اونجا به جای مستخاب خوب، پروستور کنده سعی نیشش رو می‌پرستون بوده خوب. با ما مشتری دورهای یا هاکزرا، اگر می‌رسند هر نه، بگوییم زهره گلبنگ رباب. اولا توجه بودم که ماه آمده است، مشتری آمده است و زهره هم آمده هست بدون اینکه مثلا آخر توجه رو اون کار داشته آن مه یعنی اون زن باید مشتری ولی چون زهره اون طرف هست این لغت ماه مشتری هم باش که کرده تا بوده کنم که رقاقم اون سازیست که اولا ساز زهره می که چند طرف نورترف تا دوره چنگیز، چند ولی به هر حال همان سازها دوره رفتان نورترفه اینجا به دوره یه رواق نیست میخونی هاش آقایی سلطان خوبان رفت کن گفتنه سلطان خوبان کن بعد اون غریب گفت در دنبال گفت در دنبال دل رفت کنم کند مسکنگلی خوش کم اشکیمک در زمان گفت محضورم بدا خانه پروردی چه تا خانه پروردی. خانه پروردی. خانه پروردی؟ خانه پروردی چه تا آبارد <تصفيق> <در> شد رمه چندین گلی؟ <تصفيق> خانه پرورد صحت این مرکم محبوبیست یعنی خانه پرورده خانه پرورده یعنی کسیده همشت باریس داده رو هم دو. هر که گروشی گرفتن و کس خونه بیونه نمیده این بهمه این همه قربایی می نیتونه تاقیل چه سوال بسانه ولی لفتی یعنی این تاقیل خانه پروزی چه تاقیل خانه پروزی چه تاقیل, تاقیل. تاقیل. تاقیل. تاقیل. بر سنجاب شاهی نازمی را چه هم گرز خار و خاره سازد بسته و با نیتری سنجا همه این هیتون رو شد میکنه این هیتون رو بعد یک جبه می‌کنم قبان می‌کنم برست که نم بشرت می‌کنم بشرت می‌کنم جان چندی ناشی ناس خشت تازان خال بر لپ و خشت پتاد همون که افتاد چون همزهش دو داره وقتی او همزهش می افته هر به ما, ما برد منطقه باشه افتادن می شه خوتادن استادن می شه ستادن مثلا و همساکه خشفتادن قابل مشکین مشک عربیش معربش مثل که ولی در پارسی مش چنان که در طاقتهای پرمکه در نیست به تو موضوع که سیاه نیست جرا، جرا، مشک سیاه رنگ هم هست در این ها تو توی خوش میگه خوش خدا، رنگ ها و مشکین رنگ مشکی هم جمیدن رنگ مشکی توید این مشک سیاه رنگ پس این مشکی توید اصلا تو تو رنگ مشکی هم که میگه؟ نه در حالی تو مردم میگه رنگ مشکی یه نمیتونیم اون مردم رو تحصیل کنیم ولی کلمه مشک تو آثار عدلی هم مردم ب اما بیرون هم پردون بینست در دیگر خشت بزادان خال مشکیل و رخ رنگیل قریب این هم آید اکس میلاجون و جان چندین آشنا هم در بیر رنگیل زور پر جان چندین آشناست خشت بزادان خال مشکیل و رخ رنگیل قریب عکس اکسمای در رنگ روی محو شد. همچون بعدی در شاکی نسبی غریب، همچون در شاکی نسبی غریب، و غریب بطور لحظه نو به خطر، و غریب بطور خطر یا درو در و پیاکینا پاتارد ملوئسون تحت پیاکینا پاتارد ملوئسون و تمامی شوم قریبون توره شبنگ دو در تمامی شوم غلیبان در روییه حضرت تمامی این چه چیزی پروژه دارد که شوم غلیبان تمامی شوم قریبون توره تو در حضر کنید چون بناردی می‌غرید تو حافظ آشنایان در مقام قیدت هم دور نبت گرمشی می‌درد قصد و غمگی می‌غرید این آشنایان در مقام قیدت هم به خلاف هم ممکنه به نظر کنگیاد این ترمینه ی حدیث و حدیث کنید <تصفح> یه رب به دیکن نهی بودن قول رسول عکم میگه خدایا زیاد کن برای من درباره باره خودت حیرتم عدد نسیانش داری یه این هم در احالیس نوردی هست یکیشون حدیث خیلی معروفه ما علمناک حق کمرش هم پیغانباد میگه ما اون توسید حق شناختانی توسید یا مثلا میگه که که حدیثیت همون بخشت که افرش از هم میگه من چه صناعی به تو بگم انتر که ما الان افسی میگه من که نمیتونم این صناعی تو رو بکنم صناعی رو خود از داد بکنم خود از داد مزامین اینو از همه سریعترشون رفت به ضد که ترگیرم آشنایان اینجا میگه میگه پیغمبر که به قاب حسین و رفتی به اراد و نمیدونم به عنوضای پروفی دو چمال دوریش بوده ذات الههی در مقام حیرت دیگه قریب که باید بر کشم خود شده شده دو آشنایان در مقام حیرت دور دوگ خب دفنی دفنی <تصحیح> نه بدگرمشین خسته و غمتین شما که نه که مخلومدار بکنویم داریم پانو مویزی شما لطفه همون هم باحالای بیرو که و یه با بر اگر معنی از اندیشه ای آخونسش و تروای سماو باید. دل عشاق زدان چشم خماری, خمارین. خماری نسبت. چشم خمارین یا خماری هر دیگه دیگه یه نسبته هاگه یعنونم یه بازم یعنون نسبته چشم خمارین راه دل عشاق زدن چشم خمارین قیلاز از این شیده که مسته شراب ملاحظه می‌کنیم که اینجا یکی از اشکالات و حافظ که خیلی سوش حرف ستن زیاد شراب مست، باده مست اصل مثلا بشن که اون غزل زود و تو خوهی کرده است اونجا میگه آنچه اون میخت، این غذر است هم سر حقی بار کرده یا آنچه اون میخت به پیمانه ما نوشیدیم اگر از پمر بهشت و اگر باده مست باده مست تو یکی گفته باده آدم مست و یکی گفته باده مستی مست وقتون از این حرفا ولی در دوران محافظ و قرن هشتوم می مست شراب مست یه ایت جایی دو جای دیگر هم باید آمده هم درکی. و غیر از این در کتاقی از منظوم که من تصدیل کردم اون بارم من توفیق بوده بتونم چاپش بکنم سند بادنامه منظوم که یک نسخه وقت هست ازش اونجا هم میگه جوان مست و می مست و نمون چیچی مست بلان مران می مست در دره وجود کشید بنابراین تیدات از این چیده که مست از شرابه کاملا درسته و حتی به موسیقی. اموزه با بتنم سیری که جدید برده لمن تنظر خطاره هست درسته جنابه دستم جناب آستانه در و میگه که فریاد من نشونی ولیم خیلی طبقه ای بالا بید خیلی بلندی است هر نارو فریافتی کردم نشونی پیدا آسنگاه راه که بلند است نه صراح که چه همتون بیاستم تو راه های توجه هم کردید با توی گرماشون با و سر آب و سر آف کرده می باز که قول بیابان هم موجود دیالی رو بوده که می گفتن خارش این از رو می کشه در بیابان و اونجا از گرستگی و تشنگی اونا رو <تصفيق> با قول بیابان نکنه در صورت عربی، صورت اسلامیه اون موجوده که خیالیستی ما در فارسی بشیدیم دیل زیب، مال بیرونی هست، اون، حال هست اینجا یک وقتاق دیگه هم برای خون بگم کلمه موبیلان، خوار موبیلان، که تو حافظ هم هست و خیلی هم به تا میره موبیلان یه نوع درختیست، این خوارهای دروش در و انزاری انگوش و به اندازه محکم که کسی کفش با کفش پاش رو بذاره روی این خار این خار از پشت باش میاد این اینقدر چیز تیز و محکمیه در اون بیابان های بیاب و این زمین دوشش و آب میگه و این خارها کار خیلی بلیست بهش میگن محیلان این محیلان همین جایه محیلان مخفص ام غیلان ام غیلان غیلان لنگوره ام یعنی مادر بولها معروف هست که در زیر این درست موگیلان است که بول بچه میکنه این درین این درست موگیلان یعنی ام موگیلان تا در رنه دیوی به چه آم این رقی؟ ای یه ده باری به ملت زرد شد حیام شد باری یه معنیش معنی که اینجا درست و معنی یه لاعقل معنی دست کم یه معنیش هم عرضت یک باری باری بگو گفتم یعنی یه واردیه دسته بگو گفتم بجای خود ولی کلمه باری رو معنی دست کنم توی اون شعر صدی دیگه زنبور درشت دین مروبت را گوی باری تو اصل نمیدنی نیش نزن این لاقل اگه اصل نمیدنی نیش باری معنی همینی اینجا همینی بگه که حالا این که چی کار میکنه بگه بینیم چی کار میکنه ولی به هر دوران به غلط از دست رکید تا در راه به چه آهین درد یای به غلط شد ایام شباقید بک ای افت در که منزلگه اون که یارد مکنه آفت مکنه ایام آفر ایام, آفر ایام. آفر لطفی کنه اینجا حالا هرچی از این زمانی کنه بلد. ارزانم این ای قصر دلخ روز که اون گهه اونسی یا عرب من کناد آفت ایان خرابات من کناد با اون علفی که هست توش این علم روش میگم علف دعا هر وقت برای دعا میاد علفی میرم از اینجا معمولا به لئه مزارجی صورت ام داری یعنی اله که اینطور نشد نیگه یا آمدن این مبارک بادست و این که کردی مرواد از یادت یعنی انشالله از خاطر نداریم بعد را این رسیه بود بودم بود. یعنی در اینجا به سراحت که رو یه قصر کتاب میکنید ای قصر در قصدی که منزلگی همون قصدی که منزلگی همون شده دعا میکنه که این قصد رو آفت اعیام فراش نده چنین قصدی وجود داشت و مال شاه شیخ ابو اسحاب شاه جوان و خوشمشد و جوان مرد و در و بسیار محبوب شیعات بود است که خضر گران پرواز هم بوده او را تمایلات برای زنده کردن سنت های ایران واسطان هم داشتید و تصمیل میگیده یک کاف رو شبیه کافه تختیزی هم شده و از فرد که داشته دستور میده که اهل شیراد بیان رو به این رو په این رو خواه بردارن مردم بیگردن می و میگن که مردم شیراز. زن و هست مرد به بیده واسه های خودشون رو خوشید و زنا سنگیل های سهوت در دست داشتن برای کشیدن این خواد که دو روش افلت بود بودن ویدون کرده بودن برای احترام بشن و سه روز آمدن و این کارو کردن بعد پادراف فرمان داد در حقیقت خاصی این که من اینقدر مورد احترام بودم و محبت بود. قرآن سه بود دستور اونده که خیلی که بسه و بعدی دیگران خواهدی همون با خواهد. این قصر بالا میاد ارز کنم که در بیوان اوبل عوید زادتانی در شعرهای جدیش یک جا بسه این قصره که به چه قصره این نمونهی تردوسفرینه این چنینه، این چنانه، پولانه ولی آنچنان که دیدین چا شهر افسال خیلی در جوانی مردان شیراز ملال مخدول دلشون زن و رفتن و یه مش از این کنم که جاهلا و عرض کنم که سینه و مدعمدای محل و عمره محل در شیراز کلوبشون رو گفتن کلوار رفتن, رفتن، واو با با دی محمد مظفری شب در روز شیراز ورود به رو و شیخ حبویس ها و این قصد هنوز کاملا درست نشده و در و کونت نکرده قصد خراب افتاد و بعد هم کم کم یعنی دعای قاضی متاسفان اینجا مستجاب نشد قصد و هم در دیوان عوبری باز می بینیم که یه فطعه دیگه هست درباره اظهار تاسف فراوان که این کافت چنین بود، این کافت چنان بود، این کافت این, این, این رو بود حالا فوای بوم و ارض کنم که روبا هم از این هم احتمالا اون روبایی هم که حافظ داره که این قسم جمچید در اون جام گرفت آهو بچه کرد و رو بر آرام گرفت بهرام که گوز میگرفی همه اون زیری که چکون بر ورام گرفت بی اشاره این هم کافت تمث <تصفح> ها می من اگر پرصت بکنم و یادم انجامه و گرفتاری های روزی یاد بذاره دو تا قطه اویدو رو میارند برای که من دیوان اویدو و مشغول تاثیر هستم تحصیل کردم امیدوارم که یه وقت بر زیر چاپ در هم نزدیک دوران های ن. بر حال اونجا این س ده و پ و, و برای ت فاافمون خواهم آورد بیشتر وقتی شما رو نگیره حافظ نه کلاه که از خادر بررید چون این اشاره به تف 6ش اوروز هابه و خاجر به دوران جوانی خودش هم اشاره میکن یا تا ولی جوونیت که به قلب 4 شد اللوجا در دوره جوانی خاجر این قذی بوده شده یه دومی که اون خاجری که اشاره میکنه حافظ نه کلاهی که از خاجر برید خاجر اشاره به 6ش راشهرو لطفت ما دارند پابجی پرو والی حافظ ضبطیشه پرو والی خلبان من شده نفه این رو والی حافظ در این رو تمام کی کالون مستقیم بالا و دیگه از اداره کمر آوردن بالاترین پرو که حتی مردم دو داری آورده اینجا اینا مشکوک و کتاب گلداش در اندیشه و حافظ مقدار زیاد اندازه ثابت کردن دیگه مال حافظ نیست بنابراین احتمال این هست اینم نباشه اما تویدن چون در اینجا اومده هم قصدی جمشید در اون گرفت مثلا فرض کنید که این که نمیدونم مستقلیه بکنم کرد مرگیز در خیبر برد اوساخ کرمز خاژه قنبر بود این شعر شیبیه و نمیدونم بایی که شاید من اشتباه میکنم اگر اشتباه میکنم اوز میکنم،, میکنم نمیدونم اگه یقین دارید که این حال به چشم دیدم باید. باید. و باید. باید. من به نظرم میاد که در حافظ دیدم و حالا از کجا این دوشه برای من خیلی زیادم ملفت رو یه تحیام ندارم یعنی جمعی نیست شاید من شما هر حال این به قصر چه پاپوستان باشده بابوش دیگه برم کار دوستان یا حالا چی نخون آقا خوندن سینه یا سینه از آتش دل در خم جانانه سینه از آتش دل آتشی آتش بود در این خانه که کاشانه بسوق آتشی بود در این خانه برای اول میگه که دل من آتش هست سینه سوخت از چی؟ از آتش دل سینه از آتش دل در غم جانمه درست بعد میگه توی خونه آتش بود که خونه آتشی بود در این خامه و تک آتشی بود در این خامه که کاشان بسید بسید شما در اون قریب کومیکرگویه من این کنم شاید من این کنم بود تنم از واسطه یه دوری دلبرد بودا جانم از آتش مهر رو به جانانه بسود سوز دل بین که بس آتش عشقم شم دوش برمندی سر مند چو پرگاهه بست آشنایی نقریب است آشنایی نقریب است که دلسوز من است چون من از پیش برفتم دل بیوانه بسود می دهید میگانه سو می دهید آشنای که قریب آشنایی نه قریب که درسوزه من هست چون من از خیش دل میگانه بسرد خرقه زهده مرا آب خرابات ببود خانه اقل مرا آتش میکانه بسرد و اینجا کنفانه سوزه پیاله دلم از توبه که کردم بشه که همچون لاله جگرم دیمه ی کنفانه بسرد دیمه و پیمانه درسته همکانه که نیجا فریمانه بست چون, چون،, چون دلم از توبه که کردم بشکرم پیاله توفالی بوده سی میشکستم و هم که میشکستم تو از بس که شکستم و ببستم توبه فریاد هم میتونم زدستم توبه دیروز به توبه شکستن ساغر به امروز به ساغلیش دستم تو، <تصفيق> چون پیاله دلم از تو که کردم، بشه که کرد. هست همچون لاله، لاله تنش داخلی سیاه هست بس خیلی هم آفض میمنده بشارم همچون لاله، جیگرم، اینه و قیمانه چون توبه که هزه، این نداره پیاله هم میشه کسی پیاره کم بازه که مرا مردم چشم فرقه از سر به در آورد و به شکراهانی بسوک اینجا من راجعه ماجره کردن را تخلی این نقطه را کنم بگیم یعنی معنی این شکل این از مشکلات آقا بگیم حاصل مطلعش تاخن روشن اینجا اینقدر برای من از دوری تو کور شدم مردم و چشم سر به در آورد و به شکراهانی بسوک یعنی من کور بعد برگرد من از هجرتو و از دوری تو اما اون چیز گرداریه این هست که رو برای شکرانه نمیدنه ندهدیم صندوقیتای خود من سر کلاس که مرحوم مستاد زلوزافر کاردن که ما تا حالا که به منظور شکرانه خیلق بکنن خیلق بکنن خیلی از واقعا زیاده ولی برای شک به منظور شکرانه خیلق بکنن وقت دروخت شد که با بندم و مظلوم آقای بوستانی و هم میگه آقای بوستانی برو تو یه مقداری بعد بیا برد بیان و از این ظالم تقاضا کن که با تو عاشقی کنه ظاهرا نظر میاد که این خیلی چیزی ظالمانهی باشه یه را ولی یه هدم خیلی امیر از این در پینه و او این است که در حقیقت اون مظلوم به زبان ها اون ظالم میگه برادر ها آمدی اینجا، آمدی وارد تسبب شدی که بر استفاد حیوانیت قلبه کنی و خبوی انسانی بگی خشم و غضب و بیتربیتی و اینا رو از خودی دور کن. حالا من یک کاری کردم خواسته یا نخواستهی که منجب شده تمام اون ریاضت و زحمت به تو بردر برید تا خوب یه حیوانیت رو بر تو قلبه کنه بنابراین مظلوم و حقیقی تویی که زدی تو گوش من یعنی نتیجه همه زنمادت به هدر رفته حالا که این توش به پس خواهش میکنم اجازه بده من توی تو بگوسم میشین، بینم دهن شیرین کن به جای اون بدبختی که به سر اومده و نتیجه زحمت ها ولیازد این کار رو پشت میگم ماجرا کرد و اگر ما این ندونین بسیاری از پیدا در سعدی، در حافظ در دیگران هست که اصلا معنیش نمیکن. سعدیم که بیا بیا که مرا با تو ماجرس سریع میکن، بیا بیا که مرا با تو ماجرایی هست، بگو اگر بانی رفت و گر خطار. دنبالش هم همین اصل ماجرا کرد میگه هزار نوبت اگر خاطرم بشورانی از این طرف هم منم همچنان صفا یا حافظ میگه گفتگو گفتگو آینه دروشی نبود ورنه با تو ماجراها ها داشتیم یه قرار روید از در این مورد نگید که چه گفتیم که فقیر باید بیاد ماجرا کنه در اگه کینه ای بده میتنگی یه ماجرهان رازم نداره بکنه ماجره کردن ما رو مبعض که ببینه که نمیتونیم نارا مصیب از خوش کنه بره. طرفش نمیتونه ببرشش اگه بتونه ببرشش دورازه این ماجره بود میگه گفتگو آین درویشی نمورد و نباته و ها داشت یا همینجا ماجره ها کم کن و بازا که من آمرده بنابراین ماجره ها اصطلاح فنی تسبب و معنیش هم همین مصطب گفتم که مدت ها معلوم نبیده تا یه دو تا من تصففتی که یه رسالت من رحلان دوره سمینانی شد؟ و یکی اون اوگراد احبا و خصول الادا حال شیخ با خرزیه که اون که منتشر شد این مطلب ماجرا کردن این قصه و این که باید این طوری بکنن اونجا گفته شد و تازه دانسته شد که ماجرا کردن یعنی چی؟ خواستم من این مطلب براتون بگم برای که فکر میکردم داره, داره خب، این همهاره ماجرات ببینیم بیت دوگاری هست، آفر هرکه افسانه به حافظ و مینوش نوشتمی که نخفتیم شب و و افسانه یه به اینجا شما که نداشتید، در ناسه خاندرگی اومده بیت که هرکه به سر زلخ، پریلوگ، تردی دل سودا بعد من دیوانه بسید این رو با دیوانگی قبلان گفتم تناسید چون گفته برن که پرید، موجوداتی هستن بسیار بسیار دیوان، و یکی از حواست کنید که کسی تو اینها رو دیوانه این است که پریدیده و پریدزده و امثال اینا به معنی دیوانه است. بنابراین اینجا میگه از یک از زنجیر هر که زنجیر سر پرید و پرید می‌دهد که زنجیرم برای زیوانه‌ست که دیوانه بسید دیوانه هم از کلمه دیوه، چنانکه دیوانه و دیو زده و دیو دیدم. یعنی کسی که در نکیه تصرف دیر او دیوان که اون ریوان، دیبا... نه اون از از این, از این او از او از ریشه کلمه دویده اون با دوید از یک شد دیت ریوان روانی چیزو میپرسه آقای سربان، ریوان روانی و دختر ریوان کشنا راستانی نگاه یه ریشه یه هست فارسی باستان دیت دیت به معنی نوشتن. از این کلمه هست دویل. از این کلمه هست دوستان از این کلمه هست و از این کلمه از دیوان یعنی جایی که توش چیز می‌نویسن حالا دیوان هم اسم جاییه که اون اتاق می توش چیز می‌نویسن هم اسم اون دفتر است که توش چیز می‌نویسن دوات دوات هم ظاهر من اون الان درست نمیدیم چون اینان اما چیزی که می‌دونم حتماً از این نیست و شبیه دفتر. دفتر با کلمه دیفتری ببینی خناه از یکی است دفتر دیف بیشه یونانیس ببینی پوست نازوک و پوستان نازوک میکنن برای نوشتن، اونا که مجموع کردند تا ی دفتر، دفتر که با, با دبی و اینا از ناله زنجیر سر یعنی نه نه نه این هر کد سر ذوقه توپه روی تارید روی رو. توپه رو جاش عوض به سر دورش بده ببین که دستتون خب نه، محترم دیمه شب من از پیش درفتم به یک که بگم، آشنایی نداریم برطبی، باشی که قید نه؟ دیگه آدم آشنای درشتان هم می‌سید که جای تجرب نیست آها اگه ام. آدم آشنای درشت و حالا ما که جای تجرب نیست آشنا درستانی بروری که یه وقتی من از خودم من بعضی رو دیده هم خیلی پیگاره بازم از تو نه چیست که من سر تو پریگی سر دو توجه کردیم ظاهران ارز کنم اینجا که اینجا اولا که این بیت در جنس هست حتی سنگیر سر گرفت پریدگو تو دی. که اینو بله به نظرشون اومده همه که پای سخت داره، چیز و ناز و یه شیر آتش آب, آب، و و همه در یه چیزی که توهای اجدارش داشتی و شروع چیزی زنده، داری؟ اینم هنر، این اصل همیشه. حالی به هر حال با نوشته‌های من این که ولی که نه، شما که ولی نمی‌شه می‌شه، این هم نمی‌شه یه به دل نمی‌چستم شما حس درست بید سر که حلی روی تو نمی‌شه ولی که نمی‌تونه حلی به دل نمی‌چستم، من هم هست روحی یه زده بیشترین نیست از دل به بعضی خیلی میچه از خیلی مثل قشنگی هم هست سر زرست پرین روی بیشترین در هر رو کافتر خیلی خیلی چیزی دیگه نسخه لام که نسخه قزمی نیست بهتی سه یعنی تو با از نصفی مرم کانداری بکار بودی که هفته میشهد نیشت همین به نصفی نصفی نصفی غزینه خب به سر غزل بحبی شانک تو چی؟ من معذور هستم معذور هستم <تصفيق> باید نزدید چما که تو کتاب نمید تازه هم باشتیم مطالعه نکنیم میکنیم برگون دارم نکنن یا رو بایدش خوندن خانواری امشب شما ها بیدن آخ چی میخونیم؟ خواهی میرمویدیم تو که اون رو شوخ در کماناندا بعد ابرو تم بخون میگه وزن که ابروی شوخ که ابروی تو در کماناندا به قصد جان من زاو نه خوان نشو. من زاو نه خوان. من زاو شراب کردو و خوی کرده کردی، خون کردی نه کشش باز کششیم دیمان چه را که سرمید درست کردی شراب پرده و خوی کرده کی شدی به چمن که آب روی تو آتش در ارقوان اندار که آب روی تو آتش در ارغوان اندار به برداغ چمن دوش مست بگذشتم چو از دهان تو هم اون در گمان اندار قومان اندار به یک کرشمه که نرگست به خود فروشی کرد فریف چشم تو سرد فتنه در جهان اندار جهان اندار این رو درمه در چشم فرام فریف تو سرد فتنه در جهان اندار اندا. ز شرم آن که ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردن سمن به دست, با... به دست سبا خاک در دهان اندار به نفشه طره خود گره می زر. گره, گره. گره, هی هی گره هی الان بعضی یا خیلی کار بدی شده در, در ایران حالا که در, در ایران فرمانده هش هی مرفوضه به بده می‌دونی فرمانده ی همزه می‌ذاره کن یعنی های ده مرکوزی یا گره‌ی این کار گره این کار ظاهر بشن از نه برای که مثل جیمه، مثل مثل گافت. اصلا همون همزه اصلا این بگم برای اینکه باز این یکی از این اینو من همین یادتی میگم. ما رو دو تا سنان دو تا باقلا من که کرمانی که به مذهب واسو مری مثل خانه واسو. میخوام بگیم خانه حسین خب این بعد این باشیم. خانه ی حسین. حالا میام اینجور بینیم درست خروب خیام در همزه است این همزه به همین نسخه مرمو وزنی داریم یک خطات گرجیه کنیشت ذرنیکت استاد است که پیش استاد تعمین گرفته خانه همه هر جا همزه هست مثل یه از مثلا یه از این یه یعنی کاملا مثل شیش ای هم ای این همزه هست اما این بس خانه اصلا اونجوری نمیشه، این نمیشه. این همه یه این تشم میزه و اگه بگیم خانه ای خریدم اینجا نیست رسته بعد که می روشتن باید کم کم این کوتا شده این شده این اون برای اینکه خیلی زیاد به کار و دائم هست این کردم کوتاش بالا. این همزه نیست از خودی هم که روحه غیر رو در حمزه نیست همون یه هست اینجورم نوشته میشه همزه اونیست که مثل شش منیستند مده ها از روزی که غروفتینی باب شد و حتی نوست آمده چون این یه رو در عربی ندارم و این نوه نگارش نگارش عربی است بنابراین هم خانه یه رو اینجوری غروفتینی کردن هم یا از تو هر دوش رو اینجوری و باید خاندگاه هم دادن تو گوتر یکی، این گوتر یکی میست اون یکی یه همین یه همین یست، درش ملکه یه هم بوشه این یه هم یه هست، یه میاد وقتی یه هست، نمیاد گره کار، گره کار به دست شما با. اما سررشده یک کار به دست دنه کنکه رشگه ملکوز, ملکوز نیست، گره ملکوزه و گره به ملکوزه فرمانده به یادشون رو کرد یکی از کارهایی بسیار بسیار زشت دیگران که تغییر مکان بغولادی، بعد راست این راه رو بنده ام دارم آخر جمعه. مثلا خانه ای را که قرار بود به آقای شجا خود بده هم خراب کد می‌رسه خانه ای که قرار بود به آقای شجا خود بده هم را خراب کردن <تصفح> بده هم کرد. را خراب کردن این راه حتما باید کشت محفوظی بیاده یعنی خانه ای را که مندهش بده؟ این راه را بندن را را دارم این چسی این بعضا انگلاب باقیش نیسته حریفت من با نفشه تره ممسصول خود گرفت تو, تو, تو در میان تو در می در به نفشه دوره گرفت میزد سوار و کااقیت تو در میانانددا تازه به رو اشارالات دوستان میده. به یه ساقه بلند داره باید سرش بلد بلند نازد و بشون که تره یعنی زرف و اونا اون مفتول یعنی فتیله فتیله فتیله اصلا با مفتول از یکیش و زرفی که دست دسته باشه اینوش میگن مفتول عجب از آن سر دل فرم و انبار که در کنابت و حسبت چرا آقایی مفتول یعنی همو سیم هم که میگن یعنی دراز دراز می کرد بنافشه طرقه مفتول خود که رحمی زد توی قریهن داشت که بگه اینجا سباه کاهی با با سمان دل تو و اون دلوش با پجاره سباه کاهی تو بس من از ورق می و مطرب ندیدم از این پیش هوای مقبچگانم در این آن ایلا بعد می و مطرب بعد این آن یعنی این اشکال می آنشنباید بس کنون به آب می لحل به آب, آب می لحل باز مردون کنید می رحل و مرد می عویق و یاد کنون به آب میلل خرقه میشویم می نصیبه ازل از خود نمیتوان اندار مم. نبود رنگ دو عالم که نقش الفت بود نم. نبود رنگ دو عالم, عالم که نقش الفت بود, بود. زمان تر محبت نه مم. این زمان محبت. بود و دو تا فتحه مثل موده مثل مسرم مثل مرمن شما مرمنتی که نمیده که مرمنتی کنید مرمنت موده، مرمنت هم بلکه اوجه را نبود نقش به آلم من اینو میگفتم الان به نظر من درسته این که نسته مرمنت کاندازین هست که رنگ به که نقش به نظر من بهتر نظر بعض از آن تا شد عالم که رنگ الفت نبود زمانه طرح محبت نمی‌جاست بود محبت واقعی ندید در حقیقت تمام جهان وجودش از جاذبه است مثلا میگم که قانون اصلی تمام حقیقت این چهان. از صدف باشه و در این جذاب جاذبه محبت دیگه نه رنگ و رنگ این پس یه راست اینجا نیست که حالا از نیست نه از دنیا نیست نه از دنیا نیست نه از دنیا نیست نه از دنیا نیست نه از که بخشش حضلش درمه مغان اندار مغان اندار جهان به کاممان اکنون شود که دور زمان مرا ببندگی خواجه جهان اندار بخش بسیار پرده به چشم که به رو یعنی نه, نه. خب دیگه از جوانان و بطن، جوان مزان کسی نیست دیگه آقای جوان میکنم شما آقای غلیشان میکنه دست ساقی یا آمدن عید مبارک ساقی آمدن عید <ای> مبارک است صاوی او که تردید من را بعد از یادش در شگستم که در این مدت ایام فراغ برگرفتی زهریفان دل رو می دل میدادد دل میدادد یعنی دل میامد همینی که دل میاند دلت میاد قدیم می, می, می دلت میده دل. یعنی دلت را میده دل. برگرفتی زهریفان دل رو دل میدادد یعنی دل میامد که از حریفان دل بس برسان بندگی دختر رز گوب در که دم و هممت ما کرد زبند آزاده شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست یا باد مران دل که نخواهد شادم دید یا هران هران که نخواهد شکر ای که خزان رخنه نیاد بوستان سمن و سر و گل و شمشاده خشم دور کزم تفرقت باز آورد تاله نامبر و دولت ما درزاره حافظ از دست مده دولت این کشتی نور و توفان حوادست ببرد بنیاده و اینجا هست صحبت این تشکیه نوم، صحبت اگر این کسیدی رو خواهد من از که اولا این این ظاهرم نظر نمیده فتر دلیلش گفتم براتون تون قبلا مثل این فتر هیچ مثل و مثلا و جشن های بلانی این نمیده یا گفتن جشن یا خود استشنون گفتن یا با عبر آزایی بر باد نو بوزی وقت بودن یک یا اونم از, از مطالب بود نومده حد زده می شده بیا که که فلکان روزه قارد کرد هلال یک به دو را قدر این شاره یکی از کنم که بله اینجا بنده باید وزیده سیده باید <تصفيق> <تصفيق> اینجا پیداست که این به شمال برای که در این ویژه یعنی در روزگاهی که دختر رز منطقی در بند بود و نم بود و اینا مانه رمزان بگیم شایر روی بگی آمد رمزان نه صاف داریمونه دور از چهره ما گرستنگی رنگه بود در خانه باز خوردنی چیزی نیست ای بوز برو وقت نه تو آقا از برم که این معلومی که این اولا که اشاره به یه حادثه تاریخی میکنه که این حادثه تاریخی اینجوری که پیداست میگه که وضع خراب بود شد که شد شئی زد از این باد خزان رخنه نیا گوستان و سمن و سرگ گلوشم شابه بعد تو بود خزان تفردن باز آور خاله النام و دورت مادر زابه دورانی که حافظ خیلی هم بهش علاقه داشته هم طولانی بیده نسبتا دوران شاه شجا شاه شجا چند تا گرفت داشت چند بار از شجا تنیونش رفت تا عبربو و رفت تا کرمان دوباره برگشته به دلیل بیشوری و بیکفایده برادر شاه منمون. و برگشته احتمالا اشاره به همون مساقی از تو خفرقه و برگشتن برگشته دو سال هم این فاسه تو کشکه در شادی احتمالا برگشته باشه جسرت میکنم اشاره به اون قضلی که رونق عهد شباب از پستان ها که در محضرت خایش تورانشاه بود با توجه خیلی نزدیک بودن این حالت ها نمیتونه مربوض دون باشه. خب این هم, هم, هم چیزم هم هم همین جریان شاه شجاع بودید خیلی اونجاست که مفصلی میکنه خیلی زیاد از شاه به حقیقت گوشه چه توانچه هست چه ها این که تو زندان هم افتاده بله بله اشاره به کشتی اینو هم در اون غزل هست هم در غزل هست و بعد هم بلو. فصل باهارم مثل اینکه با ایرفت هم نزد با بله بله این هم درسته و اینکه یه غزایی دیگه داری میخونیم الان بعد گل دربار رو میدرد که معشوق او خواست ولی او رو مرموم حکمت میرسیم و اونجا میگی که من, من شمید، نیام زمانی تیام گر یا آسمن رو میگی سیام، ایام در و در شیاز هست چه حد با و وقت که در در اون دوره تا دو هفته ای ایام گردی باز معلیمه و اینا هر و اجبار اجبار اجبار هم سی و سال یک بار اجرار میشه فرای اماره ساله سالش تقریبا شبیه هم از این داره محرومه ایک من تو ترجم این مسائل بر روزگارش در دیگه آفز و اینکه مثلا یه در از که در ده سالگی آفز مثلا این افتفاق گفته و یه بار دیگه مثلا در چهنس سالگیش بنابایی توی که خب در حالت دیده نمیشده این هم مثلا چه سالیگی بوده و از پولان سال هر این سبحانسان شده بنده هم بود که چشینی هم حساب کردم این در قد کردم فیلیه کردم و برشنم که احتمالاً یکی از این یکی دو سی سال الان اردهان آنگه هم که نرم بیرون بیرون بیرون بیرون بیرون کسی از سمت یا از نصف دوام است که ویسی داشت. پسی از کی نه چند وقت دیگه خود داشتیم. یو، ما ننسى اذا صداق سرکوشی صوفی آغنباه اساس چوده که در محکمی چو سنگ نمون که جامز و جاوزی چطور فرش بشه چطور فرش بشه واقع که در وارگاه استقنا چه آسان و چه سلطان چه خونکیار و چه مر از این روابط چون زنده تا سری روابط اتاق کنایش، چه سربلند و چه پاش، مقام ایش مجاز نمی‌کردیم، بلی دوو بالا بلا بالا بالا بالا یه سرستن، یه بچه، یه بچه، سر کن کاملا شخفا بوده، زیر شده شده اونهایی که شده شده بودن نه یعنی مثل عقیق کار اونهایی که روشن که کاملا شخفا بوده نه ی بنابراین اینکه مثلا تارسون روگرکی اینجه که زان عقیق که چرچه بدین از عقیق گلاد نشناد میفهمی که عقیق چی؟ یعنی و باز می‌دونه یعنی می می که لَل به شد اون قصه تو بخش اون قصه‌تون قصیده‌ی مادره می‌را بکرد می‌که وقت می‌کنی تو رو و شراب بدست شد چند از او سو، خ. چون عقیق دماغی چند از او چون نگی اون چون نگینه و درشان یعنی اون بالاش نداره خواهیم‌ترش یک کمی همونکون زرات ریز که های پردوری باعث ده بنابرای اون خیلی طور میکشده تا صاف بشه درمشه که میکده که پیرو مثل من دست به دهنده و باید میتوید تا دوبتر تو ساوش کرده نورده این از یک قسمتی عظمه ای عقیقی جاهشون لعلا آتشون دریا یعنی این جراب کاملا این صاف صاف سر خون به هست خود خاجه بگه صاف سر خون من ها، هدا، <متحد> اینش خوش از دور باش، موصفه که صاف این سر خود <متحد> دور دردیان با، خوب بودا لب دندانت را حموم نمک هست بر جان و سینه های کباب در چنین موسمی عجب باشد که به بندن نیکده به شتا در میکانه بسته اند و دیگر افتطه یا نفطه هل افا نفطه هنده مفت هل افبا همیشه منادا یا حرف نداسیم منادا اگر اضافه شده باشه به چیز دیگه مثل اینجا منصوبه مفت هل افبا ولی یا مفت هل افبا یا مفت ولی اگر اضافه شده شده, شده باشه یا مفت هل افبا افتاده از نیباز کن یا مفت هل افبا به باید بایدار حافظ آقا که شاهد بخ آب بعد بکش که چفر نبا بخ خیلی بهمونه بخناه هست اینجا چیز من من هست و دولت صبح دولت میدمد که جام هستیم آقا صبح دولت میدمد بود جامعه همچن به کجا به باشد بده بالکل <تصفيق> نہیں ساغی یار و مطرق نکتگو موسم عیش است جور ساغر و عهد شباب از فیل تفریح تف و زیوه حسن و ترف خوش بود ترکیب زرین جام زرین جام, جام, جام یا لعل مزاق خوش بود ترکیب زرین جام و لعل مزاق خوش بود ترکیب زرین جام زراب جام زرین از خیال لطف می مشاطی چالاک تر که مشاطی چالاک تر در زمین برگ گل خوش می کند قلمون گلاب اینجا توجه این شعر خیلی خیلی نازک خیلی عجیب دونه دونهی دونه کردیم باید با در قسمت هم به خود ترجعه بکنیم و اگر نه اصلا معنیش از از خیال خیال لطفه این یعنی می رو میرونه خیالش رو شما از خیال لطفه می. طبیعت آدم مشاقه چالاک طب در زمیره باغ یه خوش می کنه تن ها گلا یعنی لوتنه یالش مثل گلابی که طبیعت آدم احساس میکنه که این در برد برگ... و برد گلته یعنی چیزی ذاتی چیزی ذاتی مثلا شاهد و موجب به دسترشان و مستن پای کو قمزه ساغین چشم می‌پرسند ماست چه؟ با اینکه مشتری یه میلیارد صد نفر نبسته اونجا مشتری دورها یا ها ازراع. اگر میرسند هر نه بدونش دو به بولبان رواب اولا توجه ماه آمده است، مشتری آمده است و زهره آمده است بدون این که مثلا آقای توجه اون کار داشته من یعنی اون زن دیگاه مشتری هم ولی چون زهره اون طرف هست این روغت ماه مشتری هم باش پادی کرده کابولی عرض کنم که رقاب هم اون سازیست که البته ساز زهره اون تو چنگ. تابو مو در دوره صوت چنگیز چنگ باید. ولی به هر حال تمام سازها در درجه تابو مو در درجه گلبان ی رباب می خون نواساز دیدی سلطان خوبان رفت کن بعد postcssی سلطان خوبان را کن بعد ان دنبال رفت و داخل دمبول اون و شما اجتماعی در زمان گفت مأزورم به دار قان پارگادی چه کار قان پارگادی قان